لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا تستمطر الذل إصغاء وإذعانا لله درك لم تأنس بدنيانا بسم الله الرحمن الرحيم أي أنك نامتو بهتر سراغاز بنامتو نامكيك ننباز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 و سی پاس برای توست که آسان گردانی دی و سرنوشت نمودی درود و سلام فیروان بر رسول گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم اون بشریت را از تاریکی های کفر و شرک و بود پرستی بروشنی دین مقدس اسلام رهنمون فرمود برادرانی مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز جمعه تاریخ پانزده رمزان مطابق پنج یگست راژیوی صدای جندالا بست نوهیمین برنامه هفتوار زبانی دری را خدمت شما تقدیم می نماید خداوند جلال را سپاس گذاریم که به ما فرصت را محیانم و تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جندالا به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله همکاری عزیز و امینطور می راییم به طرف داشته های برنامه امروزی موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجاش یافته قرار زیل است در این هفته در سلسله درست به یکی از درس های استاد عبدالباسد رحمه الله گوش دهیم در بخش مرواریدی هفته، موضوع منتخب ما آداب صحبت و گفتگو و همینطور تحولات یک هفته. <تصفيق> وا على من سرات لللمجدریجلله موور بردم على قد فی... دنیا مباش آنچه اینجا عزت است آنجا مزلت می شود با بدگوهر مامز تا بدگوهر نگردی آبی که در شراب است حک شراب دارد در میزاجی جز فحش کم دارد اثر، زخمی سگ را جزله آبی سک مرهم کند. عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچی با آدمی بزرگ شود. خونیناحق دست از دامان قاتل بر نداشت. خونیناحق دست از دامانی قاتل بر نداشت دیده باشی لکه های دامنی قصاب را. مکن گردن فرازی تا نسازد دهر پامالت که نه آخر زیجور می سرکشی ها بوریا گردد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خوری داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دوشمنان نظر داری. صبح صادق مرهم کافور دارد در بغل، گر علاج درد در عصیان میکنی بیدار باش. یا شیرازیا تعليم مدی بدزاد را، بدزاد اگر شود گردن زنت استاد را. بر های دشمن تکیه کردن اولهیست پای بوسی سیل از پا افغان دیوار را بود ان بود اندر سای انتخابی در این هفته خدا کنه که مورد استفاده شما قرار گرفته باشد مع <متصفيق> نفی حکن نوابت را به استاد عبدالباسط میدهیم که در مورد موقف ابن تایمیه رحمه الله در مقابل تاتاری ها سخنانی میداشته باشند. فریاد میکنیم بر راه جهاد این راهی حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق نجات فریاد میکنیم بر <تصفيق> راہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله موقفه شيخ الإسلام ابن خیرامون تا تاریخا و قوانین وزعی برادران مخواهران قرن هفته میجری شاهد حادثه تکاندهیدنهی در جهان اسلام بود تا از شرق آسیا و سرزمین های اسلامی ریختن میگیرن و دیار اسلامی را یکی پید دیگری به اجغال خیشتر میاورن آنها داشتن با اشغال نظامی حستی های امت اسلامی را نابوت میکردن. و ایران های شعر های امده اسلام در آلت بنا همگونی در امت اسلامی داشت تا این که خیش را و بغداد پر تخت خلافت عباسی رسانیدن و در رفش تا تاریح ها را در سال 656 هجری در آنجا برف راشتن های ناشی از سقوط بغداد همانندتون بعدی بر هر گوشه از جهان اسلام به گرفت سرنگونی خلافت عباسی نابودی کتابخانه ها و به قتل هزار ها مسلمان در عراق داشت جهان اسلام را به ماتم سرات تبدیل می کرد تا تاریخ ها به این بسندن نمودن و روانه شام شدن تا اینکه که بخشای از مناطق شام را به اجغال خیش در آوردن و سپس ساز برگ نظامی فراوان را تحیه می نماین که مرزهای کشور مصر را عبور نماین اما نبرد عین جالوت در فلسطین و فرماندهی ابرمرد قهرمان سیف الدین قدس معادله نظامی را واجگون نمود. تا ها در نبر شکست مقتزیحانهی می خورند و تعداد زیادی از آنها در این جنگ تومه مرک می شوند و این شکست تاتاریخا روحی تازهی را در امت اسلامی می دمد تا این که ها تا دیگر خیال اشغال مصر را از مخیل هایشن بدور می اندازند و خواب توسع طلبی خیش را با آشفتگی تعبیر می نمائن. تا تاریخ ها و بعد از مدتی ها هایست به اسلام داخل می شوند و این امر شگفت است که برای اولین بار در تاریخ بشریت به وقوع می پیوندد غالب و ان که دست بلند دارد گرویده دین مغلوب می گردد واقعا جای شگفت است زیرا این اسلام است که هر لحظه موجزه می آفریند و بر این تأکید می کند که گاند دین برحق است که انرا آفریدگار آسمان ها و زمین برگزیده است چ قابل تذکررس این است که تاتاریها با آنکه به اسلام داخل شدن اما سوابق جاهلی خویششان نیز فراموش نکردند بلکه فراتر از این کتاب را تحدیده بودند به نام که اقتباسی برد اسلام و غیر اسلام و آن را قانون خیش قرار داره بودند و با آن فیسلام می وریدند با اولین بار بود در تاریخ اسلام که قانون غیر شریعت خداون مرجی برای حل فصل منازعات می و تاتاری با اسلامشان، آن را قانون رسمی تنفیزی در مناطق تحت نفوذ خیش کردانیدن و این عدود انحراف عاشکار از قانون قرآنی بود که امت را داشت پردگاه همین قصه پس چگونه می شد جلوی این کچف همین خطرناک را می گرفت در حالی که پاره زلمای سلطان داشتن این انحراف را در خط اسلام جامعه شرعی بطن و از آن شدید اندفاع می نمودن تا ما بادا امتای فانی دینیوی را از دست دهند زیرا از آزمون خداوند حراست نداشتند اما این قماش از دانشمندان سو پیواست در امت اسلامی سر برف راشدند همان نمی شود نوشنی تابناک حق را و حقانیت الناس و روشنی انرا در لابلای غبارهای تیر و تار باطل پنهان نمود اگر در این شرایط بحرانی که امت در ناملایمات فکری و نظامی بسر میبرد و ادده از دانشمندان زرو جا. جاهل یا متجاهلا در بحران شدن اوضاع سهیم می شون آره در این جمع ناملائم و در این نا این علماء ربانی و راستینن که امت را با استادگی و مردیشان از منجلاب جلاب بدبختی به ساحل نجات ساوک می و نمی که امت تسخوش حفظا اینا هنجار شود که دارت و فکری و اسات قدوی او را خدشدار می اینجا بود که در لابرای این هی هاو افضای متشنج عبرمرد با رشادت و پای مردیش گفتنگیز و میدان به تاختن میگیرد و شمشیر برران اسلام را در فرخ کتاب فرتودی آساب کوبیدن میگیرد تا این که در زیر چکاچک شمشیر برران این مرد رشید و شیحه اسبان مجاهدان دیگر به پوسیدن گرفته و سپس نیست میگرده این فرزند فرزانه و رشید اسلام ابو العباس ابن تیمی رحمه الله است. ابن تيمي عليه رحمة الله با دركي عميق الاسلام وارجشهاي والايش با صادر كردن بيش زيك فتوى ومشاركت درجها دمسلحان عليه تطريها داشت در بيكري خستي أمت زندك جديد ميدميد ابن تيمي عليه رحمة الله يا صار التاغوت شنا سينامود وفيس لبأن را كفر مارف كرد وبا إلحام السقران والسنة النبوي صلى الله عليه وسلم واتكاب قفتار بيشنان أمة As-dannis-man-dannis-piis-taas, mokif-i-islam-raa dyr-fattawa-yys-bastaab-namut, wa-kitaal-khi-ys-raa al qayyim dyr asar giran baha yys wa ibn kasir dyr asar tari khi al bida Ibn-al-qayyim-dyr-asar-giran-baha-yys-madaaraj-ussalikin, ya ya ya ya ya و هر بخش از آن را کشور مستقل به بار آورند و یاسای جدید را که بر از قوانین وزی شرقی و غربی است در این کشورها من ها منحیث قانون رسمی قرار می دهند و ایک بار دیگر امت را در تیدگی غبار ها یاسا قرار می دهند اما این بار وضع فرق می کند تحاجم فرهنگی هم زمان با تحاجم نظامی امت را از جا تکان می دهد ابن تیمیه با مطاند و حراس تنها و تنها از زمین. و در نشرائیتنا با سامان و اختناق حوزهای سیاسی و فرار از مسئولیت ها به حق لب گشود و از میراث رسول خدا صلی الله علیه و سلم این که دست خوش فتاوای قلابی دانشمندان سو قرار نگیرد حمایت کند من در این جا یک بخش از فتاوای بنت الیمرا درج مینمایم تا باشد که برادر و خواهر عزیزم بداند که امت اسلامی فاقدی علماء راستین و نیست و در این آل بداند که مسئولیت ولما و مسئولیت بسا جسیمی است و این علماءن که در ها و در فراز نشبها یه تعنگناهایی که امت آن قرار میگیرد با عدای وجیبیشن امت راستاری که ها نجات میدهن و این در حال است که علماء در پیشا پیش امت قرار بگیرن و بانگ الله حکبر را سردهن و با این بانگ ملکوتی و با الهام از قرآن و صنعت Paskay, bradere, wahwahar, aziz, intu, wahinham baksha sfaatwai, sheikhul islamin teemia, wahinham harat ja saffari ummat islami, wahinham harat ranj awary ulamay ummat islami, paira mooni harat ja fili. Ibn teemia, tunin ja wishte. Katali, tatari, ha, anani, kymmentäkai, shama, madan, ambreis, wa jibbakita, bi kuda, wa sunati, pykän barsalallah, wa li, خداوند در قرآن میفرماید و با آنها بجنگید تا این که فتنه اینه باشد و دین همه یزان خدا باشد و دین تاعت است پس اگر بخش از دین برای خدا باشد و بخش دیگری آن برای غیر خدا باشد جنگ واجب می گردد تا زمانه که دین همه از آن خدا گردد و بعد این جهت خداوند می فرماید ای کسانی که ایمان اید از خدا بترسید و بگذارید هنچه سود باقی مانده است. اگر شما ممنانید و اگر آن را نکردید پس بدانید که با جنگ با خدا و رسولش برخواسته اید. و این آیت در سرنشینان شهر طائف هنگامی که با اسلام شرفیاب گردیدن و نماس و روزه را برپا نمودن اما از گذاشتن سود امتناه وردیدن نازل گردید. پس خداوند برای آنها خاطر نشان می‌سازد که رسود دست نکشنان حاضر حقیقت جنگجویان با خدا و رسول صلی الله علیه و سلمن. و سود آخرین چیزی بود که خداوند آن را تحریم نمود و سود مالی است که به خوشنودی مالکان عکس می‌گذرد پس هنگامی که جهاد با این جنگجویان با خدا و رسول صلی الله علیه و سلام امری است واجب پس چیگونه از جهاد با آنها یکی بخشش‌های زیاد از شرایط را به‌ویژه را ترک می‌نمایند همانند تا تاریحا. و دانشمندان اسلام بر این اتفاق نمودن ارتای بر برخوردار زمایت وقتی که پاره از واجبات ظاهر و متواتر اسلام امتنامی ورزد جنگ به واجب میگردد و هنگامی با شهادتان لب سخن گشودن و اما از ادای نماز و زکات یا روزه ما رمزان یا حج بیت الله الحرام یا از نمودن به قرآن و صنعت پیمبر صلی الله علیه وسلم یا از تحریم گردانیدن فواهش یا نوشدن شراب. یا ازدواج با محارم یا حلال شموردن قتل جانها و مالها بدون حق یا سوت یا قمار یا جهاد با کافران یا گرفتن جیزی زحل کتاب و یا مانند جیزها شرای اسلام امتنا ورزیدن پس به اساس ان با آنها به قتال پرداخته می شود تا این که همه دین زان خدا باشد در بخاری و مسلم ثابت از هنگامی که عمر رضی اللہ عنه پیرامونی زدگان از ادای زکات با عبی بکر رضی الله عنه پای مناقشنش است ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه برایش گفت چگونه نه جنگم با کسی که حقوق را خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم تعیم نموده است ان را گذاشته چی اسلام آورده باشد و افزود زکات جزی از آن حقوق است اصلا با پروردگار اگر گردن بندشتر را رسول خدا صلی الله علیه وسلم اعتامی نمودن و من را از آنباز داشتن برای باستانی آن هم می جنگم و تا تاریخ ها و اشبای آنان از امتناکنندگان از ادای زکات و خارجی ها و سرنشنان طایف کسانی که گذاشتن بداشتن سود امتناو برزیدن زیادتر شرط خارج شدن پس کسی که در جهات علی شک می کند در حقیقت از جاهل ترین مردم بدین اسلام است جلدی بیست اشتم مجموعی فتاوه اشیق الاسلام تیمیه و صد الله تعالی محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين برهجيهاد ان راه حق <تصفيق> راهي ان راه حق راهي نجات فرياد ان راه حق راهي نجات فرياد إن راهي حب راهي نجاح فريط بيكم بر راهي جحاب راه مرواريدي هفته فلالجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود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 Kibayun bersallahu عليه وسلم فرمود أست إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثري يعني همونا إن صن سخني مجو يات كبا وسيلة أن هم دور ترس رايا بباين خاحد أنداخ يا سخني خير بجو يا ساكت باش بدلایل حدیثی Abu ابوهریره رضی الله عنه wa Gufta'ast. و است پیامبر صلی الله عليه وسلم سلام فرمود من كان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا اولیصمت یعنی هر کس به خدا و روز آخرت و یا ساکت خوب و الله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 چون زیاد سخن گفتن باعثی وارد شدن به گناه می شود به دلیل قول پیانبری خدا صلی الله علیه وسلم که می فرماید و این ابغالکم الی و ابعدکم منی مجلس یوم القیامه اثر ثارون یعنی مبغوظترین شما نزد من و دورترین شما از من در روز قیامت یا و گویان و بهود گویان هستند باید از غیبت حذر کرد چون خداون جل جلالهو می فرماید و, و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند غیبت کردن در شش مورد جایز است اول مظلوم می تواند نزد حاکم و قاضی تظلم خواهی کند دوم وقتی بخواهد برای تغییر منکر کمک بگیرد سووم هنگام استفتا از مجتهد و بگوید فلانی این چنین بر من ظلم کرده است چهارون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 به خاطر شفا از خشم و کینه که از طرف دارد و این گفتاری پیامبر صلی الله علیه و وسلم را یاد می آورد که می فرماید من کذ و و هو قادر على ای نفذه دعاه الله عز و على رؤوس الخلائق یوم القيامة حتى یخیره من الحور ما شاء یعنی هرکس خشم خود را فرو خورد در حالی که قادر بر انجام آن باشد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 یعنی هر کس رضایت مردم را با خشم خدا به دست بیاورد خداوند او را به مردم واگذار میکند سوم جبران های خیش با تنقیص دیگران و علاج آن این است که باید دانست آن چی نزد خدا میباشد بهتر و ماندگارتر است چهارم برای شوخی و حزل گفتن ولی پیامبر صلی الله علیه و سلام میفرماید ویل للذی یحدث فیکذب Lilu heikabi hilkaum, wai lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Janne, wai bar kaseki sohani drum megu jat, tomardum wai bar wai bar u. Panjum, hasad, wali pa jom bari khodos lu arihi, wasallamme farmojat. fi kalbi abdin al imanu al-hasad. Janne, dal kalbi insan imon, wah hasad boham jam on nameshavant. Shashum. بکسی کسی چیزی را نسبت میدهد تا خود را از آن تبرعه کند. هفتم بیکاری زیاد هشتم خود را به بزرگان و صاحب منصبان نزدیک کردن. مواردی که گمان نمی برد غیبت باشند ولی غیبت هستند. اول کسی را غیبت کند و وقتی بر او اعتراض می شود که غیبت است میگوید. من این سخن را نزد خودش هم میگویم. دوم کسی در میانی مردم، هنگام ذکر نام کسی میگوید به خدا پناه میبرم از به حیایی بعضی ها و یا خدا از سر تقصیر فلانی بگذرد ثوون اینکه بگوید فلانی مبتلا به این است چهارم بی‌توجهی و تساهل در غیبت گناهگاران باید از سخنچینی حذر کرد چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام میفرماید لا يدخل الجنه سخنچین به بهش داخل نمی شود، کسی که نزد او غیبت کرده می شود، باید مواردی زیر را حلق آوازی خود کند: اول، نباید حرف نمام را باور کند و نباید آن را تصدیق کند. دوم، باید او را نصیحت کند و از چینی عمل نهی کند. سوم، باید او را به خاطر خدا مبغوس بدارد چون او نزد خداوند مبغوس می باشد. چهارم، نباید نسبت به برادر غایبش سوء داشته باشد. پنجم،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 sawam waqt-e mard ba zanash sohbat kunad va ya zan ba shauharash hadisi sallallahu alaihi wa sallam la arudduhu kadhiba ar-rajul yuslihu bayna nas yaqul al-qawla wa bihi illa al-islah wal rajul yaqul fil harb wal rajul yuhaddith ra'atahu wal mar'atu tuhaddith zawjaha yani durugh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 کسی که جدل را رها میکند اگرچه حق با او باشد برتر است پیامبر خدا صلی الله علیه و می فرماید انا زعیم بيت فی ربض الجنه لمن ترك المراء وان کان محقا یعنی کسی که جدل را ترک کند با اینکه حق با اوست من در وسط بهشت خانه‌ای را برای او ضمانت میکنم از خنداندن مردم با دروغ نهی شده است بدليل قولي بانبر خدا الله عليه وسلم كما يفرمات ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له يعني واي بر كسي كه با سخنان دروغ مردم را ميخنداند واي بر او واي بر او ولازم است از خنديدن زياد حذر كرد چون الله عليه وسلم فرمايات لا تكثروا من الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب یعنی زیاد نخندید، زیرا خندیدن زیاد قلب را میمیراند. هرگاه کسی با برادر دینی خود صحبت کند و به اطراف خود نگاه کند، به معنای آن است که سخن امانت است، چون پیانبر صلی الله علیه و سلم می میفرماید اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهی امانه بزرگان را در صحبت کردن باید جلو انداخت، سخن باید بگونه باشد که شنیده شود، نزیاد بلند و نزیاد کم باشد،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 آرام صحبت کردن و عجلان نکردن، هنگامی سخن به دلیل آنچه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین صحبت می کرد. اگر کسی آن را می حرف هایش قابلی شمارش بود. پیامبر صلی الله علیه و کلام را با عجلان نمی گفت، بلکه سخن را روشن و واضح می گفت. با گونه ای که اگر گوش می کردند، آن را حفظ می نمودند.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 ابن القیم رحمه الله در آنها چنین میگوید برخی از آنان با مردم اختلاط میکنند خاطر خودپرستی و آنان کسانی هستند که عقل ثقیل و کینایی دارند نه آن طور صحبت میکنند که از آن استفاده ببری و نه آن قدر ساکیت میشوند که از تو استفاده ببرند و حتی نفس خیش را نمیشناسند که آن را در جایگاه خود قرار بدهند هنگام زم کردن نباید به طور تعمیم آن را گفت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 باید در مجلس از رفتارهای ناشایست پرهیز کرد مانند توف انداختن در حضور آنان قهقه قه خندیدن بازی با سبیل و ریش نباید در مجالیس با منکرات سرو کلزد نباید در مجالیس لغ و شرکت کرد و نباید با اهل آن رفتار نمود نباید گونه نشست که نشان دهندهی به ادبی باشد نباید در وسط مجلس نشست نباید به خود فشار آورد توا فصاحت را در کلام بکار گیرد پیغمبر صلی الله علیه و سلام می فرماید سیکن قوم یاکلون بالسنتهم کما تاکل البقره من الارض یعنی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 شنو خداوند جل جلاله میفرماید و لا تنابزوا بالالقاب و با القاب زشت و لا پسند یک دیگر را یاد نکنید و یا میفرماید الله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 اللهم انت عبدي ربك اخطاء من شده الفرح يعني خداوند به خاطر توبه بنده اش خیر خوشحال می شود از کسی که در بیابانی وسیله سواری خود را گم می کند در حالی که آب و غزایش هم بر روی آن قرار دارد و از پیدا کردن آن نیز مایوس میگردد و از فرط ناراحتی به زیر درخت پناه می برد و زیر سایه آن خوابش میبرد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 مقتل لكل غد مرزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزق بعيش مقتل لكل غد مرزق يعود جديد اکنون نوبت به بخشی اخیری برنامه امروزی رسید. البته در این بخش طبق معمول از تحولات یک هفته شما را با خبر می سازید. روز جمعه هشتم رمضان مطابق 27 جولای گزارش از ولایتی باقيس میرساند که مجاهدین دو تن از کارمندان یک شرکت سرکودی را در این ولایت اختطاف کردند شرف الدین مجیدی سخنگوی واری بادغیس در یک رسانه کفر گفت که این افراد عصر روز جمعه در منطقه سنگ آتش و سوالی مقر این ولایت ربوده شدند روزی شنبه نوی رمزان مطابقه 28 جولای. صدهاتن از باشندگانی ولسوالی اسماری ولایت کلر در اعتراض و پرتابی راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگامی این ولایت دست به تظاهرات زدن. آنان از جامعه جیهانی خواستن که جلوی این حملات راکتی از آنسوی سرحد را بگیرد. به تاریخی مذکر ایساف میگوید دو سرباز بین المللی روز شنبه در افغانستان کشته شدند. در خبرنامه ایساف آمده است که این اساکیر خویس خارجی در عملیات مجاهدین در شرق افغانستان جان باختند. در اعلامیه در مورد محل دقیقی و معلومات ایراعا نشده است. با تاریخ مذکور، مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند از جمله سیتان از نیروهای پلیس محلی که اخیراً سوی طالبان مسلح در ولسوالی سیاه‌گرد رو بوده شده بودند اجساد دو تن آنان در یاخت گردیده است فرماندهان امنیه ولسوالی سیاه‌گرد ولایت پروان در یک از رسانه‌های کفری گفته است که جسدهای این دو پلیس محلی روز شنبه در منطقه چیلانی این ولسوالی به دست آمده است و گفته ای وی یک پلیس محلی هنوز هم لا درک است به تاریخ مذکور وزارت دفاع افغانستان چهارتن تن از منسوبان ارده ملی را به اتهام انتقال سلاح و مهمات به مجاهدین دستگیر کرده است گفته شده است که دگروال شیرخان همراه با سید دیگر به تازگی در ولایت کنر دستگیر شدند با تاریخ مذکور گزارش ها می‌رساند که اردوی سوریه حمله متقابل را علیه مخالفین دولت در جنوب غرب شهر حلب جابجا کردند در گزارش ها گفته شده است که نیروهای ارتش سوریه از روزی پنجشنبه بدینسو برای اجرای عملیات گسترده نظامی در حومه حلب آمادگی گرفته بودند. روزی یکشنبه در رمانزون مطابق جولای گزارش از ولایت میدو مرداک که, می که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده ولسوالی چکوردک این ولایت کشته شد. گفته شده است که این حادثه زمانی رخ داد که ولسوالی ماسکو همراه با پیسرش طرف دفتر اخیر روان بود و ماین کنار جاده تصاد نمود. که در نتیجه خودی وی کشته و پیسرش زخم برداشت. و در همین روز در نتیجه عملیات راکتی تیراهای بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی 8 نفر از مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان به شهادت رسیدند. با تاریخ مذکور، حدود 90 در نتیجه سیلاب‌های ناشی از یک طوفان بزرگ در کره شمالی کشته و بهش از 60 هزار تن دیگر خانه شدند. خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داده است طوفانی که خانون نامگذاری شده است، آسیب‌های مالی و جانی بزرگ را سبب شده است. در هفته گذشته نقاط مختلف کوریا شمالی شاهد این طوفان بود که در جریان آن بیش از 17000 ساختمان و حدود 30000 جریب زمین زراعی ویران شده بود. روزی دوشنبه یازده رمضان مطابق اول اگست، مقامات امنیتی ولایت بداخشان میگوین که فرماندهان امنیتی ولسوالی شهدای این ولایت را به اتهام دست داشتن در ناامنیهای تاجیکستان بازداشت کرده‌اند. سخیداد امری امنیتی بادغشان گفته است که فرماندهان بازداشته شده ناامنی‌ها را در تاجیکستان و افغانستان دامن میزد به تاریخ مذکور، مقامات محلی ولایت کونر میگوین شبه دوشنبه در ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت بهش از پنج راکت از سوی پاکستان پرتاب شده است. در رسانه ها گفته شده است که 21 راکتی آن در ولسواری شیگل و سی دیگری آن در مناطق مختلف ولسواری دانگام اصابت نموده است. با تاریخی مذکور در نتیجه انفجار یک ماه صبح روز دوشنبه در مقابل یک مسجد در شهر ترنکوت ولایت اورزگان یک قاضی حکومتی کشته و چهار فرد ملکی زخمی برداشته است گفته شده است که قاضی کشته شده مولوی تاج محمد نام داشت که در یک مسجد مولای نیز بود با تاریخی مذکور آیساف می گوید که در سال جاری شاهید بیش از 20 وقعه تیرندازی بالای عساکی روشان در افغانستان از سوی نیروهای افغان بوده اند. سخنگوی آیصاف روز دوشنبه در کابل در یک رسانه کفری گفته است که بیشتر اضطراب و برخی از مسائل شخصی نزد نیروهای افغان باعث شده تا آنان بالای نیروهای خبیسی بین به گلولباری نمایند. گزارش ها میرساند در حالی که جنگ میان مخالفین و نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب ادامه دارد، میرلی متحد میگوید حدود 200 هزار تن باشندگان این شهر فرار کردند و تعداد بیشتر در جنگی ماندند. قوای دولتی میگوید که ناحیه صلاح الدین در جنوب غرب شهر را دوباره تصرف کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که مخالفین دولت هنوز هم مناطق زیادی شهر حلب را زیر تصرف خود دارند. با تاریخ مذکور یک سخنگوی راه هین می میگوید بیمیان آن می‌رود که حداقل سی نفر در نتیجه آتش سوزی روز دوشنبه در یک قطار مسافر بری که به سوی شهر چینال در جنوب این کشور در حرکت بود هلاک شده باشند گفته شده که یک پاگونی این قطار به صورت کامل طعمه حریق شده و عملیات نجات برای نجات دادن مسافران سخت تلاش کردند در این میان مقامات محلی گفتند که 47 نفر از مسافران هلاک شده و 28 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند روزی سه شمبه دوازه رمزان مطابقی دوی اگست اردوی فرانسه مسئولیت های امنیتی پایگاه نظامی ولسوال سروبی ولایت کابل را به نیروهای افغانسی پرده است گفته شده است که در این پایگاه نظامی سروبی در حدود 600 اسکر فرانسوی مستقر بودند که 300 تنی آنان به کابل فرستاده شدند. قرار است تا اخیر مای اگست دوباره به فرانسه برگردند روزی چهار شمبه سیزده رمزان مط رئیس امنیت ملی افغانستان از بازداشت پانزه تن کارمند ادارات مختلف دولتی به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان خبر دادند. گفته شده است که در میان این افراد چند تن از رایسا نیز شاملند. با تاریخی مذکور در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک قماندان امنیه ولسوالی شلمزه ولایت زابل با سیتن از محافظانش کشته شدند. محمد جان رسولیار معامین والی زابل با تایید این موضوع در یک رسانه کفه گفته است که موتری وای در حالی به این ماین تصادم کرد که از خانه به طرف دفترش در حرکت بود روزی پنشنبه چهارده رمضان مطابقه چهاری اگست مقامهای ولایت کنر میگویند یک بار دیگر ولسوالی‌های شیگل و دانگام این ولایت مورد حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفته است والی کنر میگوید که بیشترین راکت‌ها در ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده اما تلفات جانی در پی نداشته است با تاریخ مذکور، نیروهای آیساف از کشته شدن دو سرباز نیروها در جنوب افغانستان خبر دادند. در اعلامه مطبوعاتی نیروهای خبیص آیصاف آمده است که این دو سرباز در نتیجه انفجار مای کنار سرک کشته شده است این نیروها در مورد هویت سربازان کشته شده و محل دقیقی حادیثه چیزی نگفتند با تاریخ مذکور، فعالین سوریه دیروز گفتند که در یک عملیات نیروهای امنیتی حکومت سوریه در دمشق حداقل 35 تن کشته شدند گفته شده که برخی از کشته شدگان شکنجه و اعدام شدند گروه نظارت فعالین که مرکز آن در لندن است میگوید نیروهای رژیم سوریه وارد منطقه در جنوب غرب دمشق شده حدود 100 جوان را بازداشت کرده به با یک مکتب انتقال داده شکنجه کردند با تاریخی مذکور یک پلیس صبح دیروز در یک حمله بمی در جمهوری داغستان روسیه در خفقاز شمالی به شدت زخمی شده است مقام‌های محلی تنفیز قانون می‌گویند مواد انفجاری جاسازی شده در موتور دگرمانوستام ماگامیدوف در شهر بوز خفقاز شمالی انفجار کرد گفته شده است که حمله بر این پلیس چندین ساعت پس از حمله بر یک پُستای یک پلیسی دیگر صورت گرفت که این پلیس از سوی مهاجمان ناشناس و قتل رسید بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي واهدئ بها مترنما الله أكبر مقصدي هي بنا كي نستعيد قدسا جريحا قد سبي أتكل اليهود عرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبينا جمع النصارى الحاقدين زمجل وأطلب مسمعي زمجل رصاصر الشاشن أبي زمجل و شنواندگانی عزیز این ما داشته های برنامه امروزی ما تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواد الفجر قد حمحم و شد لجامه مسلم توجه البجر مؤترقا ترمح النصر منطرقا جواد الفجر قد حمحم و شد مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد أنا درع لمن وحد كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا ينادف ديت يا مسجد أنا درع لمن وحد أنا النار على العادي أنا الرشاش للف... أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي أنا النار على العادي أنا الرشاش الفادي أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي فلا أغفو ولا أخشاء وضوءي يبصر الأعشاء أنا بالله كم أكوى بحب الله والتقوى فلا ولا وضوءي يبصر الأعشاء أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر من المسكي من الإذخي كأن برهجها الأزهور، كأن بعرفه الألماس، قوي قلبه حساس. من المسكين من الادخر، كأن برهجها الأزهور، كأن بعرفه الألماس، قوي قلبه حساس. إلى متى؟